دوستان به دومین درس از موعظه سر خوش اومدین که در طی اون جوهر یا قلب تعالیم عیسی مسیح رو مطالعه می‌کنیم. معلم ما با مروری بر زمینه موعظه به بررسی محتوای باب پنج، شش و هفت انجیل متا خواهد پرداخت و نگاهی خواهیم داشت بر تعالیم عیسی برای شاگرداش. نخست برای مشکلات اونها با خودشون روبرو خواهند شد و بعد با دیگران، این شما و این معلم ما با هم گوش می‌کنیم. مرقص بعد از اینکه در مورد انبوه جمعیت و تمام مشکلاتش با ما صحبت میکنه و اینکه چگونه عیسی به اون مشکلات اشاره میکرد و این مردم را از انواع بیماری هایشان شفا میداد، بیماری های جسمی، احساسی، اقلانی و روحانی میتونید تصور کنید که او به ما میگه که ایسا بالای تپه های اطراف جلیل رفت و افراد خاصی رو دعوت کرد که در آنجا به او بپیوندن. بعد از اون مرقص به ما چیزی درباره تعالیم متا 5، 6 و هفت نمیگه. مرقص به ما میگه در نتیجه کاری که ایسا آنجا کرد، دوازده نفر رو تعیین کرد که با او باشند و بعد برای موعظه فرستاده شوند. بعد او نام دوازده رسول رو به ما میده، متا تنها کسیه که داستان کامل آن رو که در آنجا واقع شده به ما میده. او هم انبوه جمعیت رو با همه مشکلاتشون برای ما توصیف میکنه. بعد در آیه یک باب پنج به ما میگه وقتی ایسا جمعیت زیادی رو دید و تمام مشکلاتی که اونها داشتن به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزده او آمدند. مرقس به ما گفته که آنها با دعوتی شخصی آمدند و او شروع به تعلیم اونها کرد و بعد از اون متا شروع میکنه جزئیات تعلیمی رو که عیسی بر بالای کوه داده بود برای ما شرح میده. در پایان این تعالیم که از آیه 13 باب هفت متا شروع میشه، در جلسه گذشته دیدیم که عیسی این گرد همایی رو با یک دعوت خاتمه میده. دعوت چیزی مثل این بود: آیا شما جزء اکثریت هستید یا جز اقلیت؟ آیا شما جز شاگردان دروغین هستید یا جز شاگردان حقیقی؟ آیا جزء کسانی هستید که حرف میزنند یا جزء کسانی هستید که عمل میکنند؟ چه دعوت حیرتنگیزی وقتی زمینه این تعلیم عظیم رو درک میکنید با تصمیم و سؤالی از جانب عیسی مواجه میشید؟ آیا جزی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل؟ شاید حضور شما در یک کلیسا باشه که نشون بده حداقل میخواهید بخشی از راه حل و بخشی از جواب باشید. این دنیا رو به دو گروه تقسیم میکنه کسانی که بخشی از مشکل هستند و کسانی که بخشی از راه حل هستند امیدواریم تمام کسانی که در کلیساها هستند تا حدودی بخشی از راه حل ها باشن و مشکلات در بین مردمی باشه که بیرون از کلیسا هستند مسیح رو نمیشناسند و از انجیل عیسی مسیح چیزی نمیدونند اما نحوه پایان یافتن این تعالیم به ما نشون داد که این الزاما حقیقت نداره عیسی اینکه ایده زیادی هستند که فکر میکنند بخشی از پاسخ هستند اما میبینیم که بعد عیسی با اونها میگه شما رو نمیشناسم از من دور شوید ای بدکاران تعالیم با چالشی شروع میشه کجا هستید آیا هنوز در پای کوه هستید آیا هنوز بخشی از مشکل هستید آیا شما هم شخصی هستید با انواع سوالات و مثل علامت سؤال بزرگی به نظر میرسید یا بالای کوه با ایسا هستید؟ تعلیم میگیرید و یاد میگیرید که بخشی از راه حلها باشید. تعلیم با این چالش به پایان میرسه. اگر میگید که بالای کوه با ایسا هستید، شاید بتونیم اینطور بگیم. اگر شما در کلیسای عیسی مسیح هستید و اقرار میکنید که بخشی از راه حل او هستید، بخشی از پاسخ او، پس چالش اینه. چه نوع راه حلی هستید؟ چه پاسخی هستید؟ چه نوع شاگردی هستید؟ یکی از اکثریتی که فکر می کنند راه آسونی وجود داره؟ یا یکی از معدود افرادی هستید که می دونه هیچ راه آسونی وجود نداره؟ آیا اونطور که در مثل گندم و کرکاس دیدیم، یکی از اون کرکاس ها هستید؟ یا حقیقی هستید و در اون مثل جز گندم هستید؟ و بعد دعوت دعوتین بود. آیا شما جز کسانی هستید که حرف می زنند؟ یا جزء کسانی هستید که عمل می کنم. خب این زمینه تعالیم معزه سرکوه بود. حالا بذارید محتوای معزه رو مرور کنیم. محتوا چی هست؟ وقتی عیسی در اولین گرده همایی تعلیم میداد واقعا تعالیم او چی بود؟ در جلسه اول توضیح دادم که منظور من از این که به معزه سرکوه اولین گرده همایی در خلوت مسیحیان گفتم چی بود؟ زمان خلوت زمانی هست که ایمانداران کنار می تا خودشون را به لحاظ روحانی احیا کنند. من غالبا برای سر سرکوه از این عنوان استفاده می کنم. به لحاظ روحانی زمان خلوت زمانی هست که شما از جنجال و هیاهوی زندگی کنار می کشید و به گوشه خلوت میرید و زمانی رو برای دعا و مراقبه اختصاص میدید اگرچه ما به این موعظه سر کوه میگیم اما اونطور که خواهیم دید اون واقعا یک موعظه نبود اون یک تعلیم بود در متا میگه عیسی دهان خود را گشوده و به آنان چنین تعلیم داد تعالیم سر کوه این گونه شروع می شود. با گفتن این خاطمه می یابد که مردم از تعالیم او متحیر شدن. زیرا او برخلاف روش علما با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم میداد. شاید اون جمعیت جایی بودند که میتونستند آنچه را که بر بالای کوه میگذره ببینند و بشنوند پس این یک تعلیم بود و با این توصیف شروع و خاتمه پیدا میکنه که اون یک تعلیم بود اولین چیزی که عیسی تعلیم میده مربوط به رفتارها هست ما به آنها می میگوییم یا رفتارهای زیبا اونها هشتا هستند و اینطور بیان شدهاند وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است خوشا به حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خدایی هستند زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا حال رحم کنندگان زیرا ایشان رحمت را خواهند دید. خوشا به حال زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا حال صلح کنندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خواهند شد. خوشا حال کسانی که در راه نیکی آزار می‌بینند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. ایسا تعالیمش رو در اولین گرده همایی جایی شروع می کنه که راه حلها و جوابها رو تعیین می کنه. اون شاگردانی که رسولان او شدن. او تعالیمش رو با صحبت درباره رفتارها شروع می کنه. یک بار شنیدم که واعزی در رادیو می پرسید آیا شما کچخلخ هستید؟ آشفته هستید؟ سرگردان هستید؟ آیا یک چکاپ کلی نیاز دارید؟ من فکر میکنم اون یک سؤال عالی و یک معوضه عالی بود. او به ما میگفت که اگر نامه بنویسیم و کتاب او رو دریافت کنیم کتاب او یک چکاب کامل از ما خواهد کرد. عیسی به نظر میرسه که احساس میکنه اگر ما بخواهیم راه حل او و جواب او بشیم لازمه که از بالا تا به پایین مایه نبشیم. رفتارها چقدر مهم هستند. بعد در این تعلیم عیسی خواهد گفت که شما میتونید بدنی پر از نور داشته باشید و یا میتونید بدنی پر از تاریکی داشته باشید. به عبارت دیگه شما میتونید کاملا شاد یا کاملا قمگین و افسرده باشید. تفاوتش این یک چیز هست. چیزها رو چطور میبینید؟ او اون رو اینطور عنوان میکنه. چراغ بدن چشم ها هستند اگر چشم ها کامل و سالم باشند، تمام بدن پر از نور هست. اما اگر چشم تو فاسد است تمام جسدت تاریک می باشد. پس اگر نوری که در توست ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی است در واقع چیزی که او داره میگه اینه که تفاوت بین شادی و غمگین بودن این سوال هست. چیزها رو چطور میبینید چشم ها در کتاب مقدس به صورت نمادین به عنوان طرز فکر یا دیدگاه به کار رفته سوال اینه که دیدگاه شما چگونه است این تونه فرق بین نور و تاریکی و شادی و غم باشه. منظورمون چیه که میپرسیم چیزها رو چطور میبینید؟ به طور کلی ما درباره رفتارها صحبت میکنیم. مسئلی هست که میگه بعضیها در سن پیری مفصلهاشون سخت میشه و بعضیها رفتارهاشون سخت میشه. اونها تلختر و قمگینتر و ابوستر و منفیتر میشن. و هیچکس دلش نمیخواد که اونا اطرافش باشن. رفتارها میتونن بسیار مهم باشند و این روشیه که عیسی تعالیمش رو شروع می‌کنه محققینی که این تعالیم رو مطالعه می‌کنن به ما میگن که اگر شما زمینه ای رو که این تعالیم در اون داده شده آزمایش کنید بحرانی رو که مربوط به مسیحی شدن هست می‌بینید بحران مربوط به مسیحی شدن چی هست افراد مختلف جوابهای بسیار متفاوتی میدن انجیل یوحنا بر باور کردن تاکید میکنه می میگه اگر باور کنید حیات ابدی خواهید یافت از این رو او به ما میگه که عیسی کی هست ایمان چی هست و حیات ابدی چی هست این روشیه که یوحنا این رو اظهار میکنه اما متا اون رو به روش دیگه‌ای اظهار میکنه کنه متا عیسی رو به عنوان پادشاهی نشون میده که ملکوتی داره پادشاهی رویی هست که یک پادشاه در آن حکمرانی میکنه به نظر میرسه متا به ما میگه که عیسی پادشاه بود و به عنوان پادشاه، به عنوان شاه شاهان و به عنوان رب العرباب او مطیعانی برای پادشاهی خودش به کار میگرفت. موضوع بزرگی که در ابتدای انجیل متا مواجه میشید و مخصوصا در ابتدای این گرده همایی اینه. آیا میخواهید جزء مطیعان عیسی مسیح باشید؟ آیا مایل هستید؟ نه به خاطر منفعتی که برای شما داره بلکه به خاطر نفعی که برای پادشاه داره مطیع او باشید؟ بسیاری با این طرز فکر به مسئله مسیحی شدن نگاه می کنند که چه نفعی برای من داره؟ معنیش اینه که وقتی بمیرم به آسمان خواهم رفت؟ آیا وقتی در این جهان هستم شاد خواهم بود؟ آیا بهترین ها رو در دو جهان خواهم داشت؟ برای من چه نفعی داره؟ ما وقتی خودمون رو در مرکز قرار بدیم چنین روی کردی خواهیم داشت. اما متا روی کردش به اون اینطور نیست، بلا فاصله متا بحران مربوط به مسیحی شدن رو اینگونه عنوان میکنه. آیا بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه هست ؟ آیا بخشی از جواب هستید یا علامت سؤال دیگری؟ آیا مایلید بخشی از راه حل و جواب او باشید ؟ آیا مایلید عاملی باشید تا او از طریقش کار کنه؟ و برای مشکلات بزرگ این دنیا راه حل و پاسخ بیاره؟ خب اینجا ما در ای که این تعالیم داده شده بحران مربوط به مسیحی شدن رو میبینیم و بعد در این رفتارهای زیبا دیدگاهی داریم در مورد شخصیت مربوط به مسیحی حقیقی بودن اگر میخواهید راه حل و پاسخ او باشید با فیض او شما چنین کسی خواهید شد بعدها او به ما میگه که اگر شما این رفتارهای زیبا رو در زندگیتون دارید شما نمک جهان هستید و نور جهان هستید. توجه کنید که او نمیگه شما این نمک رو خواهید داشت و میتونید به پایین کوه برید و اون نمک رو در بین کسانی که این مشکلات رو دارند بپاشید. او نمیگه شما نور دارید و میتونید برید پایین و اون نور رو به جاهای تاریک بتابونید. او چنین چیزی نمیگه. او میگه گوش کنید این چیزیه که شما هستید. شما نمک هستید. شما نور هستید. این رفتارهای زیبا که بعضی از محققین به ما میگن سر سرکوه هستند در واقع تعالیمی عمیق هستند و بقیه باب پنج و و هفت کاربرد اون تعالیم هستند. پس بسیار مهمه که ما در این هشت رفتار زیبا شخصیت مربوط به مسیحی بودن رو ببینیم. شخصیت مربوط به نمک جهان بودن مربوط به نور جهان بودن مربوط به راه حل و جواب عیسی مسیح بودن بعد از اینکه عیسی خوشا به رو میده به عقیده بعضی از محققین کاربرد تعلیم خوشا با چهار مثال شروع میشه اونها رو میتونید در آیات 13 تا شانزده ببینید شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت دیگر مصرفی ندارد جزان که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستی. نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده از پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد. بلکه آن را بر چراغ پای قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نماید. بعضی از محققین به ما میگن که در این چهار مثال و در بقیه ی سرکوه که از این نقطه به بعد کاربرد هستند هستن، شما چالشی میبینید مربوط به زمانی که این شخصیت مسیحی بر فرهنگ غیر یهود تأثیر میذاره. پس وقتی زمینه این تعلیم رو ملاحظه میکنید، سه چیز هست که باید ببینید و بعد وارد محتوای این تعلیم بشید. اول بحران مربوط به پیرو مسیح شدن. آیا بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل؟ بعد شخصیت مربوط به مسیحی شدن. خشابه حالها و بعد وقتی کاربردهای خشابه حالها شروع میشن و در سراسر بقیه ی تعالیم ادامه پیدا میکنند چیزی که شما میبینید چالش مربوط به زمانی هست که شخصیت مسیحی بر فرهنگ غیریهود تأثیر میذاره. این روش خوبی حداقل برای مرور محتوای این تعلیمی هست که به موعزه سرکوه معروفه. ما در این تعلیم تصویری کلی به شما خواهیم داد. روش دیگر برای مرور محتوای این تعلیم میتونه گفتن این باشه. خوشابهال ها سبب میشه ما به درون خودمون نگاه کنیم. ما هر بار یکی از اون هشت خوشابهال رو مطالعه خواهیم کرد. و بعد از اون خواهید فهمید که وقتی این رفتارهای زیبا رو مطالعه می کنیم اونها ما رو وادار می کنند که به درون خودمون نگاه کنیم و ببینیم آیا با فیض خدا این رفتار رو در زندگیمون داریم یا نه پس خوشابه حالها ما رو مجبور می کنند که به درون نگاه کنیم در بقیه متی متا پنج که بخش طولانی از این تعلیم هست از متا پنج سیزده تا به آیه چله هشت شما به چالش کشیده خواهید شد که به اطراف نگاه کنید. چون اون قسمت طولانی متا 5 همه در مورد روابط هستند. این کاربرد هست و به نظر میرسه که عیسی میگه این راهیه که شما میتونید این رفتارها رو در روابطتون به کار بگیرید. عیسی خواهد گفت که اون در رابطه با برادرتون و در رابطه با زنتون کاربرد داره. در رابطه با کسی که دشمنتون هست کاربرد داره. در رابطه با زنان یا میتونید بگید جنس مخالف همش درباره روابط هست وقتی ملاحظه می‌کنید که عیسی درباره روابط چی میگه خواهید فهمید که او شما را به چالش میکشه که به اطراف نگاه کنید خوشا ما رو به چالش می‌کشند که به درون نگاه کنیم و بعد بقیه باب پنج ما رو به چالش میکشه که به اطراف نگاه کنیم و خوشا رو در روابطمون به کار بگیریم وقتی شما تمام چیزی رو که او در رابطه با روابط میگه که چطور باید باشه ملاحظه کردید، آماده خواهید شد که به باب شش برید. چون باب شش به ما میگه که به بالا نگاه کنیم. وقتی شما به انتهای باب پنج رسیدید، خواهید فهمید که لازمه به بالا نگاه کنید. چون چیزی که عیسی در متا پنج به ما میگه انجام بدیم غیر ممکن هست مگر اینکه خدا به ما کمک کنه. خب در باب شش او اوللا درباره انضباط روحانی با ما صحبت میکنه. مثل روزه هدیه دادن و دعا کردن. تعلیم بزرگ عیسی درباره دعا در قسمت اول باب شش هست در بخش دوم باب شش او درباره ارزش صحبت میکنه. ارزش های خدا، ارزش های آسمانی، ارزش روحانی و میگه به بالا نگاه کن تا ارزش خدا رو ببینی رو راست بگم هر چیزی که عیسی در متن این تعلیم بزرگ به نام معزه سر کوه میگه ما باید در پرتو زمینه‌ای ببینیم که این تعالیم در اون داده شده بود فراموش نکنید که شما بر بالای کوه هستید و دارید به جمعیتی نگاه میکنید که پایین هستند جمعیتی که کلی مشکل دارند و هر چیزی که عیسی تعلیم میده وقتی میگه به درون نگاه کنی وقتی میگه به اطراف نگاه کنی وقتی میگه به بالا نگاه کنید، همه به نفع اون جمعیتی هست که پایین کو هستن. به نظر میرسه که عیسی میگه آیا اون مردمی ای رو که پایین هستن میبینید؟ یکی از دلایلی که غمگین هستند و یکی از دلایلی که گم شده هستن به خاطر اینه که رفتار درست ندارن. اگر شما با فیض خدا رفتار درست داشته باشید، میتونید پایین برید و نه تنها میتونید توسط موعظه به اونها بگید؟ بلکه میتونید با زندگیتون به اونها نشون بدید که رفتار درست چیه و اینکه این رفتارها چه قدر از رفتارهایی که این مردم رو زمینگیر گیر بهترند. بهترن. عیسیا به ما میگه که به پایین کوه نگاه کنیم. آیا اون مردم رو پای کوه میبینید؟ بعضی از اونها برادران شما هستند. بعضی از اونها رقبای شما هستند. بعضی از اونها شریک شما هستند و بعضی از اونها دشمنان شما هستند. بعضی از اونها همسران و بعضی از اونها اقوام شما هستند بعضی ها از جنس مخالفند که شاید با آنها مشکلی داشته اید. حالا به پایین کوه نگاه کنی؟ به همه اون مردم نگاه کنی؟ کاری که میخوام بکنید اینه که رفتار درست داشته باشید تا بتونید برید پایین و این رفتارها رو در روابطتون با اون مردم نشون بدید. طوری که برای اونها نور جهان باشید. نمک زمین برای اونها باشید. مانند شهری برای اونها باشید که بر بالای تپه بنا شده و نمیشه اون رو مخفی کرد برای اونها فانوس دریایی بشید و مثل چراغی در چراغ پایه باشید که همه به نفع اونهاست وقتی به پایان متا پنج رسیدید عیسی به شما گفته که به درون نگاه کنید به شما گفته که به اطراف نگاه کنید و به بالا نگاه کنید او گفته به بالا نگاه کنید تا این این انزباط روحانی رو داشته باشید. تا اینکه این, که این های روحانی رو داشته باشید بعد در ابتدای باب هفت به این توجه کنید در همون ابتدا او کل تعالیم رو در معرض قضاوت قرار میده و میگه متحد باشید و به درون نگاه کنید او این مسئله بزرگ رو در مورد داشتن چوب بزرگی در چشمتون مطرح میکنه و شما با این چوب بزرگ در چشمتون راه افتادید و احساس میکنید که مأموریت و هدف شما در زندگی اینه که کسانی رو پیدا کنید که پر کاهی در چشم دارن و به اونها بگید که پر کاه رو در بیارن ایسا طبعه بسیار شوخ و ظریفی داشت او میگه ای کاران و بعد دو سوال میپرسه چرا این کار عجیب رو میکنید؟ و چرا امیدوارید که تأثیر گذار باشید؟ اینها سوالات بسیار امیقی هستند. البته این تعلیم به ما میگه که اول چوب رو از چشم خودت در بیار تا بتونی به وضوح ببینی و بتونی به اون مردم کمک کنی تا پرکاه رو از چشمشون در بیارن کاری که او واقعا در ابتدای باب هفت میکنه اینه که به ما میگه متحد باشیم و به درون نگاه کنیم کنده چوب رو از چشم خودمون در بیاریم و اول خودمون رو در برابر خدا اصلاح کنیم و بعد از اون میتونیم کمک کنیم و بخشی از راه حل و جواب عیسی برای مردم باشیم در بخش بعدی مدتا هفت ایسا میگه متعهد باشید و به بالا نگاه کنید. واقعا با تمام قلبتون به بالا نگاه کنید. بطلبید بجوید و بکوبید و منظور او اینه که مرتبا بطلبید مرتبا بجوید چون جستجو کردن خواستن شدید هست و بعد او میگه مرتبا بکوبید چون کوبیدن جستجوی شدید هست و بعد از اون این وعده بزرگ رو به ما میده اگر شما متعهد باشید که به بالا نگاه کنید و دائما به و در طلبیدن و جستجو و کوبیدنتون پافشاری کنید به شما داده خواهد شد. خواهید یافت و به رویتان گشوده خواهد شد. و بعد در تعلیم معروف خودش به نام قانون طلایی در آیه دوازده مدتا هفت اینطور میگه با دیگران همانطور رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های انبیا قبل از اینکه اونها از کوه پایین برن و قبل از اینکه گردهمایی خاتمه پیدا کنه عیسی این تعلیم بزرگ رو به نام قانون طلایی میده و به اونها میگه متحد باشید و به اطراف نگاه کنید او بزرگترین تعلیم رو برای نگاه کردن به اطراف و ساختن رابطه به ما میده که دنیا تا کنون نظیرش رو به خود ندیده خلاصه مطلبی که او میگه این هست به پایین کوه نگاه کن آیا مردم پای کوه رو میبینی اولین کاری که باید بکنی اینه که خودت رو به جای اونها قرار بدید مثلا اگر ثروتمند هستید و با کسی که فقیر هست صحبت میکنید باید خودتون رو جای او قرار بدید اگر سفید پوست هستید و سیاه پوستی رو پایین کوه میبینید خودتون رو جای اون مرد سیاه بذارید و از خودتون بپرسید اگر من یک زیاه پوست بودم، از یک شاگرد سفید پوست ایسا چه انتظاری داشتم؟ وقتی به پاسخ سوال رسیدید، عیسی گفته همون کار رو بکنید. این خلاصه تمام تعالیم کتاب مقدس است. شاید بتونید خودتون رو جای یک نفر از جنس مخالف بذارید. اگر شما یک زن بودید، از مردی که شاگرد عیسی مسیح است چه انتظاری داشتید؟ وقتی جواب رو پیدا کردید، همون کار رو بکنید شاید پایین کوه افراد فقیر و محرومی رو ببینید شاید شما محروم نیستید شما شاگرد عیسی هستید و جزء افراد ممتاز هستید یکی از افراد برکت یافته مادی و روحانی هستید حالا اگر شما فقیر و محروم بودید انتظار داشتید این شاگرد برکت یافته عیسی با شما چگونه رفتار کنه وقتی پاسخ را پیدا کردید همونطور رفتار کنید ببینید او قانون طلایی روابط رو تعلیم میده قانون طلایی جهانی رابطه ها رو قانون طلایی نگاه کردن به اطراف رو او میگه متعهد باشید به اطراف نگاه کنید و این رفتارها رو به کار بگیرید بعد عیسی ما رو به چالش میکشه و این دعوت حیرت انگیز رو میکنه آیا شما جز اکثریت هستید یا جز اقلیت؟ آیا شما جز شاگردان دروغین هستید و یا شاگردان حقیقی؟ آیا جز کسانی هستید که حرف میزنند یا جز کسانی که به این تعالیمی که من اینجا بالای کوه میدم عمل میکنند؟ این مروری بود بر محتوای معزه سر کوه این چیزی بود که عیسی در اولین گردهمایی مسیحیان تعلیم داد بعد از اینکه زمینه و مرور محتوای این تعالیم رو به پایان رسوندیم مایلم که در جلسه آینده با اولین خوشها شروع کنیم و یکی یکی به این هشت رفتار زیبا بپردازیم. بعد آیه به آیه بقیه متا پنج و شش و هفت رو بررسی خواهیم کرد. این تعلیم میتونه من و شما رو بخشی از راه حل و بخشی از جوابهای او برای مشکلات میلیاردها ها نفر از مردم این دنیا بکنه. به شرطی که این تعالیم رو مشتاقانه در زندگیمون به کار بگیریم. در این دوره مطالعه تعالیم ایسا ترتیبی بدید که با ما همراه باشید عزیزان متشاکر که در این دوره بسیار خاص از درس ها در مورد مععزی سرکوه با ما همراه بودید حالا که زمینه و خلاصه محتوای تعالیم ایسا رو در سر سرکوه دیدین این به ما کمک خواهد کرد که تعالیم ایسا رو بهتر درک کنیم دعای اینه که این درس ها شما رو در ایمانتون تقویت کنه تا بتونید پیرو راستین عیسی مسیح باشین کسی که در زندگی دیگران تغییری ابدی ایجاد میکنه، تا برنامه بعدی محبت ایسای مسیح شما رو تشویق کنه و به شما آرامش بده